البته همکیشان محترم اطلاع دارند که پیروان هر مذهبی دارای اصولی هستند و فروی دارای عوامری هستند و نواهی که به زبان پارسی می گوییم ها و نابایستنی ها یا باید و نباید ها اصول دین زرتشتی اول یکتایی و توانایی عهورامزدا دوم رسالت عشوزرتشت اسفنتمان سوم قانون عشا یا اندیشه و گفتار و کردار نیک چهارم بقای روح و روان پنجم پاداش کارهای نیک و جزای کارهای بد در هر دو جهان و ششم رستاخیز اینها اصول دین زرتشتی هستند که هر یک از ماها باید کاملا اطلاع داشته باشیم. یک تا پرستی یا توحید پایه دین زرتشتی است و پروردگار یکتا در اوستا اهورا مزدان آم دارد که به معنی هستی بخش بزرگ داناست اهورا اه اح یعنی بودن و هستن و کلمه ایز انگلیسی و ای فرانس از این اصل است از اهورا یعنی هشتی بخش و مزدا مز و مش یعنی بزرگ دا یعنی دانا پس مزدا یعنی دانای بزرگ که شادروان فردوسی اینها را وقتی خواسته در شاهنامه ترجمه کنه گفته به نام خداوند جان و خرد که این برتر اندیشه بر نگذرد از این روی دین زرتشتی را گاهی اهورا دکیشو یعنی اهورایی کیش و گاهی مزدیسنی به معنی مزداپرستی و گاهی هم دین یا ونگ و یا دین به یا بهدین مینامند زرتشتیان هر روز هنگام خوندن عوستای کشتی در کلام شهادت خود میخوانیم مزده اصنو اهمی یعنی من مزده هستم در ابستای سروشواج آمده فروران مزده اصنو زر توسرش وی کیشو و اقرار میکنم که مزده زرتشتی و اهوراکیش و مخالف دیو پرستی هستم در پنام ستایش یک نفر زرتشتی میخواند، نام و ستایش اوی همی بود و همی هست و همی بی یعنی من نام کسی را یادآور آور می و به کسی ستایش می کنم که همیشه بوده و هست و خواهد بود ایزد سپناه مینو اندر از مینوان مینو خودش یک و نام اورمزدج اوست پروردگار نیکندیشی که یگانه آفریننده هر دو جهان بوده و نامش ارمزد است خدای مهست، است توانا و دانا و دادار و پرورتار و پانا و خاور و کرفگر و عوخشیدار و عویجا و وحدادستانی و همازود اوست بزرگتر از همه و اوست توانا و دانا و پرورنده و نگهبان و دستگیر اوست نیکوکار و بخشنده و پاک و اوست داور نیک و نیرومند علاوه بر این ما در دشیان با کمال سربلندی افتخار میکنیم هنگامی که مردم جهان در دریای خرافات و بدپرستی غوتور و مشرک بودند در بین ما ایرانیان پیامبر بزرگی چون عشوزرتشت اسفنتمان پیدا شد که برای نخستین بار یک تا پرستی را به جهانیان آموخته و مردم را به راه راست هدایت فرمود. زمانی که مشریها ها گاب آپیش را سجده می و در نقاط دیگر خدایان نیم انسان و نیم حیوان می در عشوزرتشت بر ضد پرستش خدایان ساخته دست بشر برخواسته و فرمود اهورا را به ستایید که عوی تنو یعنی بدون تن و پیکر و جسم است هنگامی که اقوام کلده و بابل و آشور و یونان و روم خدایان بیشماری به اشکال گوناگون می ساختند و هر یک را خالق چیزی یا صفتی متصور میکردند پیامبر پاک ایران بر ضد بدپرستی قیام فرمود و با دلایل کافی ثابت نمود که مزدا ادوی یعنی یکتا و بیمانند و ویسپار آفریننده همه چیز است زمانی که مردم معتقد به سهر و جادو بوده و ارواح خبیسه و اجنه و پریها ها را می ستودند وخشور ایران ضد این گونه اقایه برخواسته و با بیان روشن فرمود یا تونام پیر کنم چه ساترام کویم کرفنم چه یعنی معتقد اینه به جادو و پری از جمله گمراه کنندگانه ایامی که در بین ملل روی زمین نیاز و قربانی های خونین برای خدایان, متدا برای خدایان متداول بوده و سالی هزاران انسان و حیوان برای پروردگاران قربانی می شد در تشت بر ضد این گونه کشتار و نیازهای خونین برخواسته فرمود بهترین هدیه و نیاز برای پروردگار اندیشه و ایمانی درست است در اوستای ارمزیشت که سراسر حاکی از صفات برجسته پروردگار یکتاست می خانیم آد مرود اهور مزدا مزده فرخشتیه نام اهمی اشاهم ذرتوشت را پس اهور مزدا به ذردوش کب ای ذرتوشت نخستین نام من هدف کل است بیتیو وانتویو دوام منم بخشنده نعمت سراتیو عوی تنو سوم منم بیتن و پیکر تویریه اشه بهشته چهارم منم بهترین پاکی و راستی پوخته، ویسپا و هو مزددات اشه چطره پنجم منم بنیاده تمام نیکی ها خشتبو ید یاد خراتوش خطش منم اشل خرد هفتتو تو خط ما هفتم منم خد من ید اهم چستیش هشتم منم دانش نامو و چستوا؟ نهم منم دانشمن دستم و یاد اهم صفانو دهم منم افضایش ایون دستو سپینشتو سپیننگو یازده یازدهم منم افزاینده دو اهورو دوازدهم منم حسدی بخش تردستو سوشتو سیزده منم نیکو ترین چطردستو امد ویشتو چهاردهم منم آزار پنچه دسته اونم نه پانزده منم بر همه فیروز من خشوش دسته هاتم را نوش شانزده منم نگهدارنده حساب بندگان هفته دسته بیس و اشست هیفته منم نگهبان همه اشته دسته بیش ازیه هیشده منم تندرستی بخش اهبی دسع اهمی داتو نوزدهم منم بخشنده کل ونسانستم احمیت اهمی یت اهمی مزدانامه بیستام منم هستی بخش کل و دانای بزرگ باز در اوستا 101 نام خدا بعد از جمله نام های اهورا مزدا هر توان طبان یعنی توانای کل هر ویسف دانای کل هر خدا صاحب و مالک کل است در گات ها سرود های عشوزر تشت پروردگار را چنین توصیف می کند اوست نخستین اندیشگری که با نور خود افلاک را درخشان ساخت و با نیروی خرد خیش راستی بیافرید تا نیکندیشان را یار و پشتیبان باشد ای هستی بخش دانا بزرگ ای کسی که همیشه در حال یکسانی و با روح مقدست فروغ ایمان را در قلب ما برفروزد یسناه سی بنده هفت ای مزدا. هنگامی که را با دیده دل نگریستم در اندیشه خود دریافتم که توی سراغات که توی سرانجام که توی پدر منش پا که توی آفریننده راستی که توی داور دادگر کارهای جهانی در هنگامی که توی مزدا در روز نخست از خیش بشر را با وجدان و نیروی اندیشه آفریدی هنگامی که زندگانی را به قالب مادی درآوردی وقتی که تو کردار و اراده آفریدی خواستی که هر کسی به حسب اراده خود از روی اعتقاد باطنی رفتار کند یسنا 31 بند 11 کسانی که از روی نادانی یا امدی صورت فروهر یا مرد بالدار را که منقوش در کتیبه‌های شاهان هخامنشی به پیکر اهورامزدا دانسته سخت در اشتباهند زیرا اهورامزدا به دلایلی که عرض شد ناپیدا بوده و دارای تن و پیکر نیست در آوستا میگیم بود یعنی بیتن است در همه جای اوستا اهورا مزدار و مینوان مینو یعنی روحانی ترین روح معنوی ترین معنا و نامرئی ترین چیز خوانده شده و او را نمیتوان با چشم ظاهر دید آنهایی هم که زرتشتیان را دوگان پرست یا سنوی می باز هم به راه غلط رفته زیرا به گمان آنها اهورامزدا در برابر اهریمن قرار گرفته در صورتی که در عوستا و گاتا همیشه اهورامزدا را آفریننده همه چیز یعنی ویش پاداتر خوانده و سراسر هستی جهان را آفریده او میدانند. در گاتا آمده هنگامی که ما با چشم خرد به دنیا نگاه می کنیم، دو چیز مخالف را در دنیا می بینیم بعضی چیزها به نظر ما خوب و نیک و پسندیده است دردوش این را میگه منتسب به سپنتا مینو سپنتا یعنی سپید و پاک و مقدس و مینو یعنی منش و عقل و خرد در انگلیسی مایند از همین از یک ریش است. پس اون چه ما نیک تصور میکنیم منتسب میشه به سپنتا مینو اون چه که بد تصور میکنیم منتسب میشه به انگره مینو انگره یعنی بد و زشت و ناپاک و کلمه انگلیسی، انگری انگلیسی هم که به معنی خشم و غذب و ایناست باز از این ریش است. پس انگرامینو یعنی اون چه اندیشه آدمی بد تصور میکنه و انگرامینو به زبان پهلوی شد انگرمن و به فارسی شد اهریمن پس اهریمن را خدا نیافریده اهریمن زاده فکر ماست اون چه که ما بد می دانیم منتسب می کنیم به اهریمن پس بر اکش مذاهب دیگر که میگن خداوند شیطان را آفرید و وقتی نافرمانی کرد او را از درگاه خود راند اینجاست که بابار تاهل اوریان میگه خدایا راست گویم فتنه از توست ولی از ترس نتوانم جیغیدن یعنی نمیتونم جیغ بزنم اگر ریگی به کفش خود نداری چرا باید شیطان آفریدن ولی در فرهنگ ایرانی و دین زرتشتی احریمن آفریده اهورامزدا نیست؟ اهریمند در برابر سپنتامنه و هر دو زایده فکر ماست بعد از اهورامزدا در فرهنگ ایران باستان و دین زرتشتی امشاسپندان و فلسفه امشاسپندان شایان اهمیت است. همه همکیشان اطلاع دارند که ما فرشتگانمون سه درجه دارن اول امشاسپندان فرشتگان مقرب درگاه احورامزده دوم ایزدان فرشتگان درجه دوم و اصلا کلمه ایزد یعنی قابل و تعریف این به معنی خدا نیست البته در ادبیات بعدی ایران ایزد خدا شد گرچه در صدی اکنام خداوند هم یکی از نام های خدا ایزد بعد هربستوان هربست باگاه و این ایزد یعنی کسی که قابل مده و تعریف و و تمجید و تقدیره پس ایزدان فرشتگان درجه دوام و درجه سوم فروهران البته عشوزرتوشت میدانست که بشر معمولی نمیتواند تمام صفات پروردگار یک تا را به درستی درک کند بشر خیال میکنه خدا مثل ما آدمه و یه نفر آدم نمیتواند در همه جا حاضر شود همه کارهایی را انجام بدهد همه چیز را بداند این برای بشر خیلی سخته و با وجود اینکه در صدی نام خداوند ما اهورامزدا را به صفت هروزف توان یعنی توانای کل هروزف آگاه یعنی دانای کل و هروز خدا یعنی صاحب و مالک همه چیز میدونه مها کمتر کسانی هستند که می توانند به درستی پی به این قدرت لایتنایی اهورامزدا ببرند و محتاج به تفسیر و فلسفه نباشند از این جهت اشو زرتشت وقتی که می خواهد نیروی خرد و عقل و دانش خداوند را توضیح بدهد اسمش را میگذاره وهمن که در عوستا وحب و خرد بهترین دانش پس وقتی که عشوزرتوشت اشاره به خرد اهورایی میکند این را وهمن مینامد وقتی که میخواهد راستی و درستی و پاکی و پریزکاری پروردگار را بنمایاند به نام عردی بهشت که اوستا عشا و هشت یعنی بهترین عشویی، بهترین راستی و درستی و عشوی هم دو جنبه دارد ما اگر عشویی را به معنی پاکی ترجمه کنیم باید پاکی اهم و اتم ذکر شود. همونطوری که یکی از شعرا میگه تو پاک باش و ما برادر از کس باک اینجا پاک باش یعنی ظاهر و باطنت پاک باشه و عشویی را ما نمیتونیم نه به راستی معنی کنیم نه به درستی معنی کنیم نه به پاکی معنی کنیم نه به پارسلایی تمام اینها در بردارنده اشویی از این جهت بهتر است ما همیشه کلمه عشویی را به کار ببریم و بعد تفسیر کنیم که عشوی یعنی چه. پس اشویی به معنی پاکی کامل دو جنبه دارد اشویی ظاهری اشویی باطنی اشویی ظاهری یعنی تنمون پاک باشه لباسمون پاک باشه محیطمون پاک باشه خانمون پاک باشه بهش میگن عشوی برونی یا ظاهری و عشوی درونی یا باطنی یعنی اندیشه و گفتار و کردارمونم پاک باشه پس ما میتونیم بگیم اصول دین زرتشتی یکیست و آن است. و خود اوستان میگه ایو پنتا یو عشهه راه یکی است و آن اشویی است پس عشع و هشته یعنی خداوند بهترین عشویی است وقتی اشو میخواهد به قدرت لایتناهی پروردگار اشاره کند میگوید شهریور اوستا خشتر ویریه خشتره یعنی شهریاری سلطنت ویریه یعنی نیرو یعنی نیروی فرمانروایی نیروی سلطنت وقتی میخواد به فروتنی و عشق اهرامزو اشاره کند میگه سپندارمز اوستا سپنت آرمیتی سپنته یعنی سپید و پاک و مقدس آرمیتی یعنی عشق فروتنی و درجه کمال و رساوی پروردگار را خورداد اوستا هارو و تات و بیمرگی و جاودانی پروردگار را امرتاد امرداد نام میبرد و باز توش وقتی که این امشاسپندان را میخواد توضیح بده که روی هم شش را امشاسپندانه سه تا از امشاسپندان دارای صفت مردانه است و سه تا از امشاسپندان دارای صفت زنانه یعنی خدا نه مرد نه زن یک ما فوق اینا مثلا وهمن یعنی عقل کل عشوهشت یعنی پارساوی کل عشوی کل و شهریور یعنی نیروی کل این ستا از صفت مردانه است حالا صفت زنانه سپنتا تا یعنی عشق کل همون طوری که مادر به فرزندانش عشق میورزد خداوند هم به آفریدگانش عشق میبردد مثل مادر مهربان است بعد هاروتاد خورداد یعنی رسایی و کمال زن است که رسایی و کمال را به خانواده میده خانواده را مرتب میکنه زیبا میکنه و امرداد بیمرگی زن است که با زاد و ولد خود نسل خودش را بیمرگ میکنه ولی میبینیم باز در اوغمزدیهشت که بعد از عشوزرتوشت توسط موبدان بزرگ نوشته شد این شش امشاسپندان را از آفریده احورا مزده می داند. گرچه وقتی می اینها این صفت هستند یعنی از خودش به وجود آمده یعنی تقریبا آفریده خود آن است. که ما اینکه کلمه فرزند فرازنده یعنی فرازاییده شده فرا به وجود آمده و در عوستاهای پازند و پهلوی و اینها امشاسپندان را شیش را میگه وقتی که اسم احرامده جدا برده بشه در پنام ستایش میگونیم آفرید و داد پیخیشه هم بیده زور دانایه اورتر شش امشاسپندان یعنی خداوند آفرید و داد با نیروی شیاری و عقل کامل خودش ابرتر بالاتر از همه شش امشاسپندان و ابد وش یزدان بسیاری از یزدان و مانندین ها بعضی اون جایی که امشاسپندان صفات پروردگار هستند مثل نور خورشید که از صفات خورشیده و خورشید را نمیشه از نور جدا کرد و نور را هم نمیشه از خورشید جدا کرد پس امشاسپندان را هم نمیشه از اهورامزده جدا کرد از این جهت هر وقتی نام اهورامزده قبلا برده شده از شیش امشاسپندان ذکر میکنه ولی وقتی میخواد اهورامزده را و امشاسپندان را با هم ذکر کنه میگه هفت امشاسپند و در اومزیش میگه و آم میگه وو منو من اد آمنظر توش را من آفریده من است عش به من اد آمنظر توش را اردی بهشت آفریده من است خشد و من اد آمنظر توش را سپند تا آرمیتش من اد آمنظر توش را حور امر تععمل من اد را اینها همه از آفریده یا از وجود اوست در اوشته های بعدی عوسته هایی که در آفریگون ها میخونیم همینطور در پتت آمده همینطور در اندرز گوا آمده آمده و این امشاسپندان را هر یک معموریتی دادن که در رأس شهور میگه اهورا مزدا در عالم معنوی پروردگار کله ولی در عالم مادی دادش مردم دوستیه میگه این مردم همدیگر را دوست بداریم متحد و یگانه باشید و این کلمه همازور بیم همازور هماشو بیم یعنی متحد باشیم هم دل و هم زور و یگانه و یک دل باشیم همون چیزیست که هر هفته برادران مسلمان ما به نام نماز جماعت میخونند و در واقع این نماز بیم یعنی نماز جماعت پس در عوستا هر یک از این امشاسپندان دو جنبه یا دو کار بهشون داده شده در عالم معنوی و مینویی یک وظیفه دارند در عالم مادی یا گیتی صفت یا شغل دیگری دارند به منش نه به گوش نه به کنش بیگانه که فرار جای خورا ای و خوراکشته و آن را از گرسنگی و تشنگی و سرما و گرما نگه داری با دستان و کهتران مهربان بی سالاران و مهتران را گرامی دارید و به داد و آین امشاسپندان که فروزگان هرمزد فروزه یعنی صفات که فروزگان هرمزد فاکند راه پویید دادادار امشاسپند از شما خوشنود باشد داد و آین و همه امشاسپند آشتی و نیکندیشی است کینورز و رازم کام مباشید نیکخواه و نیک منش بید. بدی مکنید پیرامون بدکاران مگردید دانش اندوزید و خردمندی پیش کنید فرهنگ گسترید و دشمنشی براندازید با دشمنان به داد کوشید اینجا کوشید یعنی بجنگید با دشمنان به داد کوشید یعنی در موقع جنگ از روی عدل و داد و انصاف رفتار کنید با دوستان نیکی ورزید چار پایان سودمند را خوب نگهداری کنید و کار افادمانشان مپرمایید همونطوری که اهورامزدا دادش مردم دوستید و همه هم شاسپند موکل بر حیوانات سودمند و بردبارم و البته اینجا بهمن نماینده خردان است. داد اردی این اردیبشم شالسبند راستی و پاکی است. درون و برون خود را پیوسته پاک دارید. از کجی و ناپاکی پَهریختار بیید. اشوئی ستایید و به داد اشا راه پویید. چه راه در جهان یکی است و آن اشویی است. به منش نیک منی، به گوش نیک گویید به کنش نیک ورزید اوا همدیگر یک دل و یک زبان بید از دروغ و سوگند و جادوی گریزان بید آتش که اندرگیتی مهر و را نماینده است گرامی دارید و به نصاب و پلشتی میالایید داد آین شهری ورم شاسفند نیرومندی و خیشکاری است خویشکار یعنی شغل آزاد شغلی که کارتون کار خودی باشه. و همیشه ش در توش دستور میده که سعی کنید بنده و، برده و نوکر کسی نباشید. خویشکار باشید خودتون فرمانده و، رهبر کار خودتون باشید اندر راه سروری و توانگری کوشابی دردوش نفرموده مال جمع نکنید بزرگی دنبالش نرید ولی از راه کسب حلال از راه عدل و داد بزرگ شدید چی دارد ان در راه سروری و توانگری کوشا بید. شهریاران و سروران دادگر را فرمان برید کسی که ظالمه لزومی نداره اطاعت کنیم شهریاران و سروران دادگر را فرمان برید و گرامی دارید و ما همیشه به زهاک بد میگیم برای که ظلم کرده از فرارونی و درستکاری اندوزید فرارونی یعنی از روی کسب حلال و اوارونی برعکسش از روی کسب وارونه کسب زشت از فرارونی و درستکاری اندوزید مال جمع کنید ولی از راه درست هو تخشا و خیشگاربی هو تخشا یعنی شغل نیک شغل خوب از بیکاری و گدایی دوری گذینی برخاسته کسان دست میازید و رشک مبرید و سیم و مس و روی و آهن و عرضیز و برنج را پیوسته پاک نگه دارید تا زنگ نزند و همیشه به کار آید مخصوصا در باره اشلحه. دستیر داده همیشه شمچیر و نیزه اون های قدیم را همیشه آماده برای نبرد نگه دارن الانم در سربازخونه سربازان یکی از شغلشون پاک کردن تفنگ و مسلسل و ایناست که همیشه آماده باشه برای به کار بردنش داد آین سپند آرمزدم شاسپند فروتنی و مهربانی است همون صفتی که مخصوص زن است. گفتم سه تا از امشاسفندان دارای صفات زنانه هستند و سه تا مردانه صفات زنانه فروتنی و مهربانی است اندرگیتی ایرمنش و فروتن بید فروتنی از صفات زنانه است، یعنی بچه هر هم ظلم و بکنه به مادر عذیتش کنه باز در برابرش خودش رو و خاشه میخونه یه مسئله معروف میگه تو این بند افتادگی کن چه خاک و مادر هم مثل خاک افتادگی میکنه در برابر موجوداتی که آفریده و روش دارن را میرن اندرگیتی ایرمنش و فروتن بید با هم دیگر دوستار و مهربان بید ترمنشی ترمنشی یعنی خودپسندی قروح ترمنشی و خودپسندی مکنید هوچشم بید هوچشم یعنی چشمتون پاک باشه زن به هر مردی نگاه میکنه با هوچشمی پاک چشمی نگاه کنه مرد به زن نگاه میکنه با پاک چشمی نگاه کنه همون چیزی است که هم کشانه هم میانان ما میگن محجوب حجاب محجوب یعنی کسی که حج با داره محجوب این نیست که حتما باید چادر سر کنه و در کتاب خودشونم میگه هم زن باید محجوب باشه هم مرد این معنی اصلیش همون هوچشمه یعنی با حجم و حیابی. نسبت به جنس ما مخاله وقتی نگاه میکنید با پاکچشمی نگاه کنید هوچشم بید خیشاوندان مستمند را ننگ مدانید و از خواسته خیش یاری آموزشگاه و بیمارستان و دیگر بنیادهای نیک نهید و چون زمین پوده و بارد بار بید اینجا زن و مادر و زمین را هر دو همصفت می دانه. زمین را پاک و آبادان داری داد و آین خردادم شاسپند خرمی و آبادانیست دل خود را خرم و تن خود را پاک داری چه پاکی تن عشوی روان است ناسپاسی مکنید اندوه گین مباشید گیتی به چشم نیک بینید و به داد اورمز خرسند و سپاسدار بید آبادی سازید و شادی افزایید آب که سبب خورمی و آبادانی است پاک دارید پلیدی و نسا اندر آب روان میفکنید تن و جامع در آب روان مشویید کاریز کنید کاریز یعنی غنات به دری هم گاهی میگیم کاریز کاریش کنید و زمین خشک را برومند سازید داد و نهردادم داد و آیین امردادم شاسپند تندرستی و دیر زیبش نیست تن خود را درست و توانا دارید ای درج و پلیدی دوری کنید خانه و جامه را پاک و بیالایش دارید آب ارمیشت و ایستاده خوشکانید و جایش که اشتذار کنید دار و درخت افزایی، درخت جوان مبرید برو میوه نارسیده مچینید دارو و درمان به ارزانیان دهید ارزانیان اینجا یعنی مستقیم کسانی که لیاقت اون را دارن به ارزانیان دهید و دردمندان و افتادگان را پرستار بی. این از فلسفه عمیق امشاسبند در دین زرتشتی و فرهنگ ایران باستان